بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین خیر مقدم عرض می کنم به حضار محترم محققان دانش دانشجویان دانش برای شرکت در مجلس و تشکر می کنم از جناب های کریمینی ها که قبول زحمت کردن و اولین جلسه از سلسله نشست های مجالس کاتبان رو قبول زحمت کردن که سخنگانی کنن سایت کاتبان یکی از پروژه هایی بود که ما در اینجا به انجام رسوندیم و در نوروزی روزی که در راه دو ماه دیگه 11 همین سال فعالیتش رو تمام میکنه و وقت دوازده همین سال میشه علیکم السلام. و در حقیقت در دورهی که فعالیت کرد تونست یکی از مراجع بسیار قابل اعتناع در حوزه مطالعات اسلامی با نگاه به میراس مکتوب باشه در کنار فعالیت این سایت تصمیم بر این شد که از همه کسانی که در این مجموعه دست به قلم میشن و مینویسند، و یا کسانی که به هر نحوی مرتبطن ارتباط علمی دارند با این مجموعه دعوت بشه که به صورت حضوری جلساتی رو حالا به صورت ماهانه طبق برنامه ریزی که خواهد شد در موضوعات مربوط به میراس مکتوب اسلامی برگزار بکنیم و طبیعتا جلسات به صورت کوتاه یعنی سخنگانی های حدود یک ساعت الى یک و نیم ساعت خواهیم داشت و بعد از اون هم یک مدت کوتاهی رو اختصاص خواهیم داد به جلسات پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ میتونه در مورد موضوع همون جلسه سخنگانی باشه یا درباره کارهای دیگری که سخنگان در فعالیتهای علمیش انجام میده این جلسه ای اول، چنانکه که مرسوم هست در فعالیت های اسلامی، سعی کردیم با موضوع قرآن و مرتبط با کلام خدا شروع بکنیم. لذا موضوع سخنگانی جنبای کریمینی ها در باقیه مصاحف کهان قرآن هست که عموما در فهرستنگاری نسخ خطی بهش به صورت تخصصی پرداخته نمیشه و حتی میشه گفت کمتر از توصیفی که نسخ غیر قرآنی دارن توصیف میشند به این معنی که فرض بکنید اگر که کتابی از مثلا در تفسیر قرآن باشه یا کتابی در فقه باشه یا کتابی در تاریخ باشه در زمینه های علم دیگه باشه به مشخصات نسخ و مشخصات متن به تفصیل پرداخته میشه مقایسه میشه با آثار دیگر در حالی که در مصاحف قرآنی توصیف ها معمولا خیلی اندک است و به هر حال به خاطر اینکه همش به چشم یک کتاب قرآن دیده میشه چندان مورد بررسی قرار نمیگیره موضوع سخنگانی جناب آقای کریمی نیا در این زمین است خود آقای کریمی از چهره های نامدار مطالعات قرآنی هستند متولد 1350 هن در حوزه تحصیل کردند در دانشگاه ابتدا فلسفه خواندن بعداً دکترای علوم قرآن رو از دانشگاه تهران گرفتن و خب جدا از تحصیلاتشون فعالیت علمی خیلی پرحجمی داشتن صد مقاله علمی ازشون منتشر شده در موضوعات مختلفی مثل ادبیات عرب حدیث و سیر تاریخ تفاسیر شیعی و علوم قرآنی و حدود دوازده کتاب هم از آثاریشون چاپ شده که باز بیشتر اونها در همین مبحث علوم قرآن هست یک کتاب ارزشمندی که دارن کتاب شناسی مطالعات قرآنی هست که یه مرجع بسیار تخصصیست یه کتاب دیگه فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن هست و اثری که من اخیران دستان رسید استفاده کردم وقتی عراق بودم کتاب ترجمه قرآن های اصر عموی بود از آقای دروشگیشون ترجمه کردن توی پنج ساله اخیر جناب آقای نیا تمرکزشون رو گذاشتن روی مطالعه روی مخطوطات قرآن و کارهایی که الان دستشون هست دو تا از قدیمه ترین نسخ قرآن رو یکی در اه آسان قدس رزوی و دیگری در نجف رو که قرار است به صورت میله چاپ بشه، کار پژوهشش رو ایشون بر دارن و یک کاری هم که در حقیقت تصحیح متن المصابیح فی تفسیر القرآن وزیر مغربی بود، کتاب بسیار مهم است، ایشون انجام دادن و پایان‌نامه دکتری درست میگم آقای کریمیا بله پایان هم همین بود و الان دارن آماده میکنن برای انتشار با بهترین نمره هم فکر میکنم که قبول شد این پایان نامه درست میگم؟ تو که شد و هر حال بیشتر مساده دوستان نمیشم و استفاده میکنیم توی وقت کوتاهی که داریم بیشتر از جناب آقای کریمینیا و السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم سپاس سپاسگزارم از دوست عزیزم جناب ا استاد تباتبایی یزدی ایشون با لطف خودشون خیلی بیش از اونچه که بود در معرفی من گفتند و خوشحالم که در نخستین جلسه از مجالس کاتبان این وظیفه رو بر دارم که یه گزارشی از موضوع نسخه شناسی مصاحف قرآن و اهمیت تحول و ارتقاء اون در ایران ارائه بکنم. گزارش من به دلیل که تصاویر خیلی زیادی آماده کردم که به صورت بصری تبیین بیشتری رو ارائه بده متکی است بر پاورپوینتی که اینجا شما خواهید دید لذا مجبورم بعضی از تصاویر که شاید شما دوست داشته باشین دقت بیشتری در مدش بشه مکس بیشتری بشه رو مجبورم گاهی وقتا خیلی سریع تر برم که تعداد زیاد تصاویر قابل دیدن باشه و همه اونها قابل انجام باشه این گزارش رو به شکل سریع تری به تمام جبانش برسنم من در قسمت اول صحبتم یک معرفی بسیار اجمالی و سردستی از تنوعی که در نسخه های قرآنی از آغاز صدر اسلام تا تقریبا دوره معاصر داریم در چند دقیقه مرور میکنم و در میان نسخه های حجازی و کوفی تمرکز بیشتری میکنم برای اینکه دوره خیلی متقدم رو ارائه میدن یه تفاوت های رو اونجا نشون میدم در قسمت دوم صحبت خودم میکوشم بیان بکنم که اساسا نسخ های قرآنی به ما چه میدهند. چه داده هایی هستن و چه اهمیتی داره که ما در اونها کند و بکنیم و نسخ پژوهی قرآنی بکنیم و در قسمت سوم و پایانی صحبتم باز نشان دادن نمونه هایی تلاش این هست که ا ایده هایی رو مطرح بکنم برای اینکه نسخه پژوهی قرآنی ما و نسخه شناسی و فهرس نویسی قرآنی ما به خصوص در ایران ارتقا پیدا بکنه و از این حدی که تاکنون بوده بسیار بسیار علمیتر و فراتر بره. اگر یه دستبندی خیلی اجمالی از قرآن نویسی در قسمت مشرق اسلامی بخوایم به دست بدیم، من قسمت مغرب اسلامی یعنی از مصر اون طرف تا اندلس رو تقریبا کنار می‌ذارم چون نوع خطشون یک کمی متفاوته و نوع قرائاتی که در اونها به کار رفته از ابتدا متفاوت بوده. از مصر تا اندونزی رو بخویم در نظر بگیریم قدیمی‌ترین ها به خط مایل یا حجازی نوشته شدن که اینها رو معمولاً تاریخ‌گذاری در قرن اول یا اوایل قرن دوم میکنن در دوم انواع خطوط کوفی هستن که کوفی قدیم حساب می‌شن اینها از میانه های قرن دوم یا حتی اواخر قرن اول هم ممکنه بشه از اون‌ها نمونه‌های یافت که تا اواخر قرن چهارم از این سبک کوفی در شامات در عراق در مناطقی مثل مصر مثلا مصرد امر آس در فستات مصر مراکز اصلی قرآن نویسی با این سبک بوده و ما این سبک رو خیلی خیلی به ندرت در خود ایران خودمون داشتیم سبک دیگر کوفی که از حدود قرن سوم آغاز میشه و بهش کوفی مشرقی یا در بقی حالات خاص کوفی ایرانی گفته میشه تا حرودن صده هفتم همچنان نوشته میشه و در او شمایلی از ترراهی هنری حتی حالت خط و نقاشی هم ما میابیم خیلی هنری تر و هنرمندانهتر میشه یعنی کاتب صرفا نمیخواد به ما بگه که متن قرآن چیه بلکه میخواد بگه علاوه بر متن قرآن هنر من در زیباسازی این متن قرآن و نقاشی کردن این کلمات چگونه هست من یه سبک دیگه ای رو که معمولا غربیان با همین یکی میکنن جدا میکنم و اسمش رو گذاشتم نسخ کوفی به دلیل اینکه نسخ کوفی همون سبک جدید کوفیه اما بیشتر به نسخ نزدیکه تا به کوفی و ما خیلی راحت تر اون رو میخونیم نمونههایی که نشون خواهم داد شما این رو خواهید دید دسته های دست پنجم یا دسته آخر انواع خطوط غیرکوفی مثل نسخ و سلح و ریحان و محقق و اورقا و, و اینها که دیگه به خط کوفی نیستن و از قرن چهارم آرام آرام ما نوشته هایی به خط غیرکوفی داریم اسنادش به ما باقی مونده مثلا قرآن منصوب به ابن بواب در چه سرویتی نسخه ای از قرن چهارم که کاملا به خط نسخ خیلی پخته نوشته شده. از قرن چهارم تا چهدهم رو میتونیم به صورت دوره تاریخی، مختلف معاصر با حکومت سلاطین مختلف دسته بندی بکنیم قرن چهارم تا هفتم تقریبا همزمان با دوره عباسیان هست تا سقوط بغداد که قرآن‌ها در ایران در عراق تحت حکومت عباسیان یا بدون حکومت عباسیان در دوره قزنوی ها، در دوره سامانی ها، در دوره سلجوقیان کتابت شده دوره ایلخانی با همراهی مقر قرن هفتم و 8 های سبک خودشو داره دوره تیموری قرن هشتم و 9 دوره خاص مملوکی خیلی خیلی اهمیت داره از میانه قرن هفتم ما با دوره مملوک ها در منطقه مصر، شامات، حتی یه بخش زیادی از عربستان و حجاز کنونی مکه و مدینه روبرو هستیم که قرآن های خیلی خیلی مشخص و معین و هنرمندانه و, و سلطانی در اون منطقه نوشته می‌شده و از این نمونه‌ها تو ایران البته خیلی کم اومده دوره عثمانی ها حکومت عثمانی هاست که تقریبا چهار قرن یا بیشتر قرآن نویسی در ممالک تحت تصرف عثمانی ها کتابت می شده با سبک خاص اونها هم از خوش خوشنویسی و هم از حيث قرائات تاثیرگذاری عثمانی خیلی خاصه معاصر با اون دوره صفوی ها در ایران هستند که دو سه قرن در یک رقابتی هستند هم از حیث سیاسی و هم از حیث فرهنگی در قرآن نویسی هم تاثیر و تاثیر این دو بر روی همدیگه بینیم. در ایران دوره قاجاری داریم و یک مناطقی رو من جدا کردم مثل شبه قاره بالکان یمن به طور خاص اندولوس شمال آفریقا اینا رو که جدا کردم آفریقای سیاه و مرکزی آسیای میانه و یا آسیای شرق دور اینا هم برای خودشون تو دوره‌های جدید یه سبک‌های از قرآن نویسی داشتن که فعلا اونا رو من در بحث خودم وارد نمی‌کنم در اون دو قسمت اول یعنی خط کوفی و خط حجازی که تقریبا چهار قرن طول کشیده و قدیم ترین نسخه ها تقریبا به خط حجازی هستند من یه سری تصویر اینجا آماده کردم برای نشون دادن تفاوت بین دو خط حجازی و کوفی سمت راست یه خط حجازی رو می‌بینیم و سمت سمت چپ خط کوفی قرن تقریبا سومی دوباره تو این نمونه یه نسخه از کتابخانه ملی سنبتر... روسیه در سمت بیترس در مقایسه با یه نسخه کوفی میبینیم که تو نسخه حجازی خیلی خط شلخته تر به نظر میاد مثل این نمونه دوباره بازی خط نسبتاً شلخته در سمت راست میبینیم در مقایسه با دو تا سبک مختلف از خط کوفی قدیم در یه نمونه دیگه از سن آه یک خط هجازی رو سمت راست میبینیم و در مقابل نسخه کوفی که در کتابخانه ملک منصوب به امام حسن البته امام حسن مشتبه علیه السلام قرار داره دو سبک متفاوت باز یک نمونه حجازی در مقایسه با یه نمونه کوفی یکی از مسجد جامعه صنعا و یکی هم از کتابخانه خانه ستون مسجد منطقه بنای چلسوتون که یه خط کوفی پخت جدید هست جدید منظورم در مقایسه با نسخه هجازی این آخری هم نمونه معروف نسخه بیرمنگام است که چند سال حقیقی در نیار سراسرا کرده بخاطر آزمایش کربن 14 که روش انجام شده و سمت چپ یک نسخه کوفی با یه سبک دیگه از کوفی های قرن دوم تا چهارم این نسخه های هجازی شاید مهمترین نسخه ها از حیث تاریخی باشن به خاطر اینکه واجد داده ها و مشخصاتی هستن که در قرون بعدی تقریبا خیلی از اونها از بین رفته من یک مرور کلی بر نسخه های حجازی و ویژگی های نسخه های حجازی میکنم اه، که اهمیت اونها رو نشون بدم اولا این مصاحف روی پوست به شکل عمودی هستن نه به شکل افقی که در این تصاویر ماری هم همه حجازی ها عمودی بودن همه کوفی های قدیم به شکل افقی بودن البته این صد درصد نیست ما موزه حجازی داریم که روی قطعه بیازی و یا افقی کشیده نوشته شده خمیدگی کلی اونها رو به سمت راست شما مشاهده کردین اینا رو به همین دلیل ابن ندیم در کتاب خودش به همین شکلی توصیف کرده و خط مکی و مدنی رو گفته که سبکشون به سمت راست افتادگی داره و قربی ها هم به همین دلیل این اسم حجازی رو روی این نو خط خاص که به سمت راست افتادگی داره گذاشتن و اینها میگن حجازی. کتابت اینا پیوسته است البته تو کفیه های بعدی هم تا حد زیادی پیوسته است پیوسته به این معنا که کلمات از هم جدا نمیشن پشت هم نوشته میشن و هر جا که یه کلمه ای جا کم میاره نصف شکسته میشه و به سطر بعدی منتقل میشه. این سبک از نگارش که متأثر از نوشتن متون کوهن در منطقه خاورمیانه و در بین و بوده از قبل از اسلام در متون سوریانی در نوشته های قرآنی قدیمی هم اینن رایت شده تزهیب، سرسوره، اینجور چیزا توی این نسخه های حجازی تقریبا وجود نداره جز اونایی که معمولا به شکل خیلی ساده و الحاقی بهشون اضافه شده حد اکثر تمام سطح پوسبرگی استفاده میشه و در همین حال هیچ تغییری به نظم سطرها و سطر بندی و صفحه بندی وجود نداره به خاطر همین شما سطر بندی ها رو خیلی شلخته و بی نظم ببینین گاهی وقتا توی یه صفحه 20 سطره تو همون صفحه بعدی 25 و سطر کاتب می نویسه و این اتفاق توی کوفی هایی که به نظم می رسن دیگه اتفاق نمیفته. در کتابت صداها خیلی رسم ناقص وجود داره، نقص شدید مثلا در کلماتی مثل کانه که به صورت کنه نوشته بشه، قاله به شکل قله، مال به شکل مل نوشته بشه، کلمه زو به معنای صاحب با الف نوشته بشه، زوار نوشته بشه، کلمه الو به صورت اولا نوشته بشه، همچور که اینجا میبینین شعی به صورت شای نوشته بشه، اینا اگر در یک نسخه یکی دو تا باشه خیلی نشان دهنده کهنگی و قدمتش در قرن اول نیست ولی اگر در یک نسخه تمام قُل‌ها تمام قاله ها قول نوشته شده باشه یا تمام کانوها کنون نوشته شده باشه نشانه خیلی خیلی کهنگی در شکل رسم کلمات هست قرائب املایی در رسم کلمات خیلی زیاد است تو نسخه‌های حجازی چیزایی که ما حتی اونها رو ممکنه غلط تلقی بکنیم مثلا توار رو تاوا بنویسیم مثل اله رو با یه دندونه اضافه مثل الیه بنویسیم داوود رو به صورت دوات بنویسیم جابجا جا. اینا شکل‌هایی هست که ما در نسخه های حجازی بینیم و تقریباً در نسخه های کوفی دیگه در قرن دوم یا از میانه های قرن دوم اینا دیگه وجود ندارن جئت رو مثل جاتکم بنویسیم مثلا در یه نمونه این چنینی این چنین کی از نوشتن رو بهش می‌گیم قرابت در رسم و جالب این در تمامی مصاحف حجازی یا در اکلب غریب اتفاق اونها اکثر غریب اتفاق اونها پایان آیات مشخص میشه از همون ابتدای که کاتبان اینها رو مینوشتند مثل مصحف های کتاب مقدس در مسیحیت پایان دانه دانه آیات و حتی بسمله علامت خاصی گذاشته شده و اونها رو مشخص کردن که اینجا پایان آیه است ولی به وقتی به قرن دوم میرسیم یک باره تمام اینها از بین میره و ما سه قرن تقریبا پایان آیه نداریم بسمله هم آیه تلقی نمیشه و بعدا این نسخه های کوفی رو کسانی میان 5 تا تا یا 10 تا 10 تا یا تخمیس میکنن و پایان آیه هاش رو معین میکنن ولی از ابتدا پایان گزاری آیه تو نسخه های کوهن وجود داشته و من حد میزنم البته این حدس اولیه‌م هنوز تحقیقام کامل نیست من حدس میزنم این جدا شدن بسمله یعنی بسمله رو به صورت یک بسم الله الرحمن الرحیم صورت یک آیه مستقل جدا و مشخص نکردن یکی از دلایلش میتونه دعواهای فقهی قرن دوم باشه که دی بسیاری از مکاتبه فقهی اهل سنت به خصوص معتقدن که بسمله جزء قرآن نیست و در مصحف نگاری هم این موضوع خیلی تاثیر خودش رو دوره عباسی ها گذاشته وجود صح و اشتباهات مکرر کاتب، کاتب در قرون نخست به خصوص تو قرن اول خیلی اشتباه میکنه خیلی و این اشتباهات به شکلی فراوان هست که تصحیحش به چشم میاد و هر کسی اون نسخه رو تصحیح کرده یک نسخه پر از غلط رو گویی داره تصحیح میکنه البته این نسخ نص... این نکته تا اندازه با مصاحف کوفی بعدی قرن دوم سوم چهارم اشتراک داره و دو نکته آخر که فعلا من من اینا تعداد ویژگی ها رو حدود 25 تا آوردم. ولی مهمترین هاش این ده 11 تا است که عرض کنم و در یه مصحف حجازی قرن اولی معمولا 90 درصد اینها ممکنه یک مرغمی از 90 درصد اینها وجودش اختلاف قراءاته. موضوع اختلاف قرائات و ش... قوا... قرائات شاذ شواز قراءات در نسخه های حجازی خیلی وجودش بیشتر است از نسخه های کوفی یا دیگه نسخه های چهارم به بعد که به خط غیر کوفی هم نوشته میشه حتی قراءات منصوب به بعضی از صحابه که ما گزارش های خیلی فراوانی از اونها رو تو کتاب های تفسیر و علوم و قرآنی میبینیم نمونه های اونها رو در نسخه های حجازی و کوفی مواردش رو میبینیم و آخرین مورد این است که در نسخه های حجازی ما ممکن است نسخه پیدا بکنیم که ترتیب رایج در چینش سوره ها رایت نشده باشه ترتیب رایجی که امروز ما در اختیار داریم ترتیبی است که بهش میگیم ترتیب عثمانی که از سوره فاتحه شروع میشه و تا سوره ناس میشه. ولی ترتیب سوبرهای دیگری هم ما داریم مثل ترتیب منصوب به امام علی علیه السلام مثل ترتیب منصوب به ابن مسعود یا ابی و دیگران که اون ترتیبها شکلش با شکل عثمانی رایج متفاوت بوده و در مدار اصلی جامعه وجود نداشته یعنی جریان نداشته حالا ما نسخه های حجازی پیدا می کنیم امروز دستیب پیدا می کنیم که ترتیب اونها احیاناً متعارف و مت... مت... با اون که ما امروز متداول هست یکی نیست چند نمونه از اینها رو ببینیم این نمونه از دو تا نسخه هجازی که همچنان که میبینین فقط یک سطر بین دو تا سوره فاصله گذاشته شده شلختگی بینظمی مشهوده در این نسخه باز به همین صورت جدا شده دو تا سوره از همدیگه همچنان که اینجا میبینین لی از زکر اول نوشته شده اولا الالباب یه نمونه از اون قرابت راست بسم الله رو همچنان که اینجا بینید یه علامت پایان آیه مشخص وجود داره که تو تمام پایان آیه های دیگه شش تا نقطه خیلی ریز هست در این یکی هم همینطور این پنج تا نقطه کناره هم گذاشته که پایان آیه رو مشخص می‌کنه همون چیزی که اینجا در پایان این آیه بینید. برای بسم الله در قرن اول مشخص میشه این هم 4 سه 4 نمونه از بسم الله هایی که در نسخه های مختلف با سبک های مختلفی پایانشون مشخص شده و این در قرن اول رایج بوده یه نمونه از یک صفحه از یه نسخه ای در صنعا که هرچی قاله و قالت و قالو هست بدون علف و به شکل ناقص نوشته شده ما به رسم شریدن ناقص و شدتش در این صفحه پیداست یعنی یه دونه قاله با حذف علف نوشته نشده بلکه شیشتا قاله رو شما میبینید در یک صفحه که بدون علفه من برای رسم ناقص در مورد کلمه کانه فقط از یک مصحف شماره 18 در مشهد که مشغول تصحیح و در چاپ فاکسی میلش هستم هرچی کانه دم دست بوده در همه کانه هایی که شما میبینید ما کانوی عملون به صورت کنوی عملون اینچان اینجا که در اینجا میبینین شکل ناقص نوشی شده در سوره های مختلف فقط در یک قرآن و ما در قرن دوم در نسخه های کوفی و غیرهجازی دیگه من تا حالا ندیدم که کانه به این صورت به شکل ناقص نوشته بشه مثالی از داوود که همچنان گفتم داوود رو به شکل دواد بنویسن از دو نسخه مختلف این نمونه هایی از رسم ناقص در نسخه های حجازی مثالی از تووا که به صورت تاوا نوشته میشه مثل این صف این برگی که من دورش رو با زرد نشون دادم. اونجا همه دوستان ببینن این تصویر رو. این نکبل وادل مقدس تووا با یک الف. حالا توجیه این که این چرا با الف نوشی شده؟ این بحثای خیلی مفصلی من الان به قصد ورود به دلائل لحجهی یا قرائتی در این موضوع ندارم یا رسم الخطی در این موضوع ندارم. هر کلومینات جداگونه. در این نسخه پایینی همون نسخه بیرمنگام هست که الفش بعد از مدتی پاک شده پاک شده و در این نسخه که فکر می کنم در اشتاس بیبلیوتک برلین هست اگر اشتباه نکنم علفهش بعد از این اینکه پاک شده این خط به اینجا متصل شده و مطابق رسم امروزی توواشت نوشته شده در این نمونه کلمه شای رو میبینید در هایی که من در مناطقی که من آبی کردم پنج تا شای که همه به صورت شای نوشته شده و دو تا که به صورت اله با یه دونه دندونه اضافه در اینجا و در اینجا نوشته شده و این شکل رسم ناقص و دارین کلماتش این هم دو تا مثال از بالایی نسخه کتابخانه ملی فرانسه و پایینی هم نسخه شماره 18 در مشهد است که فاکسی میلیون داره انجام میشه الها به صورت الی نوشته شده خب این نمونه‌ای که دیدیم اول الالب اول نوشته میشه و مثال هاش از نسخه دوباره شماره 18 تمام الوها به صورت اول الالب غیر از این اولی که این اولا بوده و بعد یکی کسی اونو پاک کرده و به تصور خودش درستش کرده ولی بقیه این اولاها دو شاخه لا رو شما میبینین سر جای خودش هست این شکل از رسم ناقسم یکی از ویژگی های نسخه های قدیمی باز از مصحف شماره 18 هرچی زو دم دست بوده من گذاشتم تو اینجا زوها رو میبینین همه با الف هست مثل قالو که جورش ما الف میگذاریم اینا برای زوها همه الف میذارن زلفزل و مثلا زوال یه نمونه از قرائت غیر متعارف گفتم در نسخه ها ممکنه قرائات صحابه پیدا بشه این لایه زیرین در نسخه شماره سفیک بیست در محدود سن آس که لایه زیریش یه نسخه غیر عثمانی هست و به قطع حجازی هم در رسم حجازی نوشته شده مثلا این آیه 196 سوره بغره فمنکان منکم مریزن او بهی ازن من رأسهی اینجوری نوشته شده فانکان احدون منکم مریزن او بهی ازد. فمن فمنکان منکن مریزن تبدیل شده فب... فان کان اهدون منکن مریزن این نمونه های قراءات غیر متعارف قراءات شاز یا قراءات منصوب به صحابه رو ما در نسخه های حجازی میتونیم احیانا پیدا بکنیم نمونه های نادره ولی نایاب نیست پیدا میشه ولی در نسخه های غیرهجازی تقریبا وجود نداره و اینم نمونه آخر از مواردی که ممکنه ترتیب متعارف رعایت نشده باشه ترتیب متعارف عثمانی مثلا اینجا میبینیم در یه نسخه شماره صف یک دو این نسخه سوره شعرا و سیعلمال لذین زلمو ایمن قلبن یانقلبون. اینجا سوره شعرا تمام میشه و ما انتظار داریم سوره نمل شروع بشه ولی به جای او سوره وصفات بسم الله الرحمن الرحیم وصفات صفوا سوره 37م شروع میشه و این ترتیب ترتیب منقول است که ابن مسعود در ترتیب مصحفش بعد از شعرا سوره صافات قرار داشت خب در نسخه های حجازی از این نوع ترتیب های غیر متعارف باز میتونیم پیدا بکنیم این یک توضیح اجمالی بود در مورد تفاوت دو سبک مختلف حجازی و کوفی اگر به سراغ کوفی های جدید بیایم دیگه از قرن سوم کوفی ایرانی یا مشرقی شروع میشه یا نسخ کوفی هایی که شروع میشه نوشته میشه تا قرن هفتم حتی ادامه داره من چند تا نمونه تصویر از این رد بکنم این اولی نسخهش که در موزه ملی ایران هست تو این نمونه باز یه نمونه کوفی مشریقی از موزه ملی رو هم که کاتب فقط کلماتو مینویسه نون والقلم و مایسترون علاوه بر اینکه کلماتو نویسه هنر نقاشی خودش رو هم به رخ می‌کشه و او رو پردازش تصویری می‌کنه و اوج چنین هایی رو ما در کتابت خاندان غزنوی خاندان وراغ قزنوی می بینیم می‌بینیم که تصاویری از اون رو در ادامه خواهیم دید هم یه نوع ای از کوفی ایرانی که در موزه ملی ایران هست این دو نمونه از سبک‌های مختلف کوفی مشریقی یا ایرانی که در آستان قدس هست هر دوشون این دست چپی تاریخ داره 58 فکر می 586 اگر اشتباه نکنم دست راستی تاریخ نداره ولی به کوود قرن پنجم میخوره. و این نسخه شماره هف آسان قرص روی که روی کاغذ هم نوشته شده اینا دیگه تقریبا روی کاغذ میشیم اگه نکی خیلی مهمی فراموش بکردم بگم وقتی از قرن سوم میگذریم به قرن چه وارد میشین با فراگیر شدن کاغذ قط های قرآنی از پوست که تبدیل به کاغذ میشه از حالت افقی هم تبدیل به حالت عمودی میشه تو های کاغذی ما ندرتا مصحفی رو پیدا میکنیم که قطعش بیازی باشه دیگه از قرن 4م بعد دوباره قطعا برمیگردن به همین حالت و این نسخه جالب است که به امام جعفر صادق علیه السلام منسوب شده در حالی که روی کاغذ است و یه خط کاملاً پخته کوفی مشرقی قرن پنجمیه این نمونه از اون خط عثمان وراغ غزنوی عثمان ابن حسین که کتابت رو در حدود سال 462 هجری انجام داده و یه قرآن سیپاره خیلی پادشاهانه نوشته و اون فرد احمد عبدوسی آمره به کتابت بوده یکی از وزرای غزنوی صفحات دیگه از همون برگست نشانه، همچنان که میبینیم روشن هست که کاتب فقط کلمه نمیمیسه بلکه گویی داره نقاشی میکنه من از اینا خیلی سری رد میشم نمونه از همین سبک که وراغ غزنویه می رسیم به اون دسته دیگری که من جداشون کرده بودم و اینا رو در واقع باید یه جوری دیگران مثل آقای دروش و اینها از قبیل کوفی جدید میدانن مثل کوفی مشرقی و کوفی ایرانی میدونن ولی من به اینا میگم نسخ کوفی چون در اون مایش به نسخ نزدیک‌تره و ما خیلی راحتتر اونها رو می‌خونیم برخلاف کوفی های ایرانی که الان دیدیم یه کمی سخت بود خوندنشون اینا رو خیلی راحت می‌خونیم ما قدیمی‌ترین نمونه‌های نز... این سبک رو از قرن سوم داریم تاریخدار جالب است که تاریخ دارن اولی هاشون روی پوست هستن ولی دیگه بعدا روی کاغذ سردی میشن. در مورد این نسخه من خیلی حرف دارم بعدا بهش خواهم پرداخت این نسخه ای است که در ایران نوشته شده و یک کسی در آخرش به فارسی توضیحاتی نوشته که قدیمی ترین سند دستنویس فارسی به زبان فارسی در این نسخه پیدا میشه. این در ایران نوشته شده ولی متاسفانه تا الان من هیچ جزئی رو در ایران پیدا نکردم یک تکش در کتابخانه ملی اسرائیل هست. چهار تکش در چستربیتیه و برگه های خیلی پراکنده از او در موزه های دنیا مثل پولیتیان، مثل مجموعه دکتر خلیلی در لندن و جاهای شبیه به اون وجود داره نمونه های دیگه از نسخ کوفی این نمونه از موزه ملکه این نمونه از موزه ملی این نمونه از مو... کتابخانه حرم علوی در نجف چرا که میبینید خط خیلی به نسخ نزدیکتره و دیگه چند تا سبک جدید مثل خطای محقق خط نسخ قرن هفتمی در قونیه نوشته شده این در چستربیتی این نسخه مملوکی که از قرن هشتم در چستربیتیه و این هم قرآن معروف زرین قلم باز در چستربیتی کتاببت 582 که انواع خطهای ریحان و محقق و مثلا این خط محقق احمد ابن سهروردی در, در موزه ملی ایران این کتابت خط سرس تقریبا میشه گفت از ارغون کاملی باز در موزه ملی ایران اینا کتابات های دیگه جدید هست میرسیم به دوره های جدید این یه ن خط ریحان در باز موزه ملی ایران از قرن هفتم یک خط توقی از قرن هشتم دیگه اینا ات حالات کوفی در اومده و قرن های جدید میرسیم یه نسخه از یاغوت ها که یاغود ها تقریبا تا الان پنجاه و۴ پنجشون من پیدا کردم یعنی شما یا خودشون رو دیدم یا تصاویرش رو یا اینکه آدرس رو پیدا کردم بیش از سه چهارم این ها جعلی هستند و امضا ملحق دارن به خاطر اینکه خیلی قیمت و ارزششون را رو بالا می بردن به یاغوط مستسمی منصوب شدن خب بخش اول صحبت من تا اینجا تمام شد. یه گزارشی بود از بله برای تاریخ داره. الان در موردش بحث میکن. این تاریخ داره تاریخ 292 هجریه خب بخش اول صحبات من در حالا من میخوام بگم که واقعا این دانش نسخه شناسی قرانی به چه دردی میخوره به چه حوزه های مرتبط میشه خیلی سریع اگر بخوایم چند حوزه مختلف رو من در نظر گرفتم با توجه به زیغ وقتم ازشون رد میشم یکی تاریخ هنر و معماری توجه بکنید ما دانشمندانمون فهر ما عموماً به نسخه های قرانی همچنان که دوست من جناب آقای تباتبایی هم در ابتدای جلسه گفتند توجهی نداشتند و ارزش درونی و تاریخی اونها رو از جهات مختلف بررسی نمی کردن به همین دلیل ما جدید قدیمی ترین نسخه هایی که توی حوزه های مختلف علوم در اختیار داریم به فقه و اصول و تفسیر و اینها مربوط میشه که از قرن خیلی قدیمی بگیریم قرن چهارم. مثلا یه نسخه از قریب الحدیث ابن قتیبه داریم که در لایدن هست این یکی دو تاست یعنی حتی تعداد اندوشان یک دست هم تعداد این نسخه های قرن سوامی علمی ما نمی رسن یعنی منظورم از علمی غیر قرآنی قرن چهارم و پنجم خیلی نسخه کم داریم و بعد به سراغ قرن شش همه هفته می آیم. اما اگر کسی به سراغ قرن اول تا سوم بخواد بره تنها راهش دسترسی و بررسی نسخه های قرآنیه یعنی در درون اونها انبوهی اطلاعات تاریخی که اولیش تاریخ هنر و معماری هست از قبیل تاریخ خوشنویسی و خط که ما هر اطلاع بخوایم از قدیمی ترین قران های قرن اول دوم سوم باید ک... کسب بکنیم اون سه قرن برای ما مجهولن اگر به سراغ نسخه های قرآنی نریم تاریخ تصحیح معماری معماری با الگوهای هندسی با مثلا یکی از چیزهای خیلی جالب من یه مثال بزنم اینجا الان اگر شما بخوام یه تصویرم گذاشتم اینجا مثلا اگر همین امروز یکی از شما روی لباس خودش یک ستاره شش بر موسوم به ستاره داوود هک بکنه یا روی ماشین خودش بکشه خیلی این عمل در هر کشور اسلامی عمل زشت و ناپسندی تلقی میشه و اگر مورد حالا اهانت یا چیزی قرار نگیره به حال عمل تحسین برانگیزی دست کم نیست تشبه به یهودیت تلقی میشه اما در معماری اسلامی ما در قرن پنجم حداقل از قرن پنجم به بعد نمونه فراوان داره تو دوره سلجوقی‌ها در قرن ششم فراوان ما در بناهای اسلامی ستاره ششبر یا موسوم به ستاره داوود رو در اختیار داریم که توش، توی بناها به کار رفته و از همه جالبترین اینکه که همزمان در نسخه های قرآنی از این ستاره و انواع ستاره های دیگه استفاده شده و ستاره ششبر خیلی پیداست، خیلی حوویداست و کسی اونها رو محو نمیکرده این بخشی از تاریخ هنر و مماری گذشته ماست که از طریق نسخه پژوهی قرآنی کشف میشه و ما میفهمیم گدشتگان ما چگونه عمل میکردن چگونه فکر میکردن چه چیزی رو جز به فرهنگ خودشون میدانستن و مثل لباس پوشیدن که تغییر کرده این موضوع هم توی فرهنگ و معماری ما آرام آرام تغییر کرده تاریخ ادبیات، رسم حروف عربی رو به قدیمی ترین اشکالش ما تو نسخهای قرآنی میبینیم خط فارسی رو به قدیمی ترین شکلش ما در نسخه های قرآنی میبینیم در نسخه های قرآنی که ترجمه دارن یا در نسخه های قرآنی که تاریخ کتابت و وقف و مالکیت به زبان فارسی نوشته شده ما قدیمی ترین فارسی که امروز در اختیار داریم کتاب الابنیه نسخه ای است که در ویان قرار داره به خط اسدی توصی در سال قمری قدیمی تر از اون هیچ دست‌نویسی به فارسی نداریم. ولی اگر به سراغ نسخه های قرآنی بریم از قرن سوم، چهارم و نیمه اول قرن پنجم که هنوز چیزی در اختیار ندشیم، انبوهی یادداشت و نوشته به زبان فارسی و با خط با حروف عربی و به خط فارسی می‌تونیم بیابیم. اینا ارزش تاریخی بسیار زیادی دارن که به ما نشون میدن لحجه رو نشون میدن، نوع کتابت حروف رو نشون میدن و همچنین تاریخ ترجمه فارسی، ترجمه‌های فارسی قرآنی که در این نسخه‌ها وجود داره ارزش واجه شناختیش ارزش زبان شناختی خیلی خیلی است. تاریخ اجتماعی مثل اموری مرتبط با استخاره، تفاول، نامگذاری فرزندانی که در آخر قرآن‌ها هست این اصلاً یه امر جدیدی نیست از قرن 4 و ما در پایان قرآن‌ها تاریخ کتابت, تاریخ تولد فرزندان رو درج کردیم یعنی گذشتگان ما درج کردن و این سنت وجود دارد. اجزای مختلف قرآن این که قرآن رو در یک جزء بنویسن یا دو پاره، پنج پاره، پنج پاره نداریم هفت پاره، چهار پاره چارده پاره، ده پاره یا سی پاره یا صد و پنجاه پاره بنیمیزند. مثلا شش پاره هم داریم. مثلا چیزی به نام تقسیم بندی صد و بیست پاره، تا همین صد دویست سال اخیر ما اصلا نداشتیم. ولی تقسیم بندی چارده پاره و هفت پاره فراوان داشتیم که قرارند رو در چارده قسمت جدا یا هفت قسمت جدا بنیمیزند. سنت انواع وقت در خانقاها، مزارات اینها همه از توی این نسخها در میاد. و ارتباط کاتبان با دربارها هم خیلی جدی است توی تاریخ کتابت خیلی جدی است وقتی یه شاعری از یه حد عادی بالاتر میره وقتی یه پزشکی از یه حد عادی بالاتر میره این نمیتونه فقط برای خودش پزشکی بکنه یا شعر بگه این حتما یه ارتباطی با بخواد یا نخواد با دربار زمان خودش با حاکم شهر محل خودش زندگی خودش پیدا میکنه کاتبها هم معمولا اینجوری بودن یک پیوند عجیب و غریبی بینه و تو این روابط ما گذشته های ما بخش زیادی از تاریخ گذشته خودمون رو تاریخ کتابت قرآن ها میابیم تاریخ صنعت مثل صنعت چوب کاغذ پوست کتابسازی سازی جوهر مرکب اینا که خب بحث نسخه است و آخرین و مهمترین مسئله تاریخ قرآنه بخش زیادی از تاریخ قرآنی که ما امروز میشناسیم بیشتر از 95 درصدش حاصل اون چیزی است که به صورت گزارش های روایی به دست ما رسیده یعنی ما از متون تدوین شده کتاب های حدیث تاریخ کتاب های علوم قرآن در مییابیم که به ما گفته می شود قرآن نقطه داشت اول یا نداشت قرآن اعراب داشت یا نداشت و قراءات اینچنین بود یا آنچنان بود اما سند بسیار مهم و قابل استناد و قابل جستجو در حوزه علم خود نسخه های قرآنی هستند و نسخه های قرآنی بخش زیادی از جزئیات تاریخ قرآن رو به ما می نشون میده به ما می نمایانان. مثلا ما گزارش های قرن دوم آخر قرن دوم مثلا فضل قرآن ابو عبید یا سجستانی در نیمه اول قرن چهارم یا دانی از همه تر دانی در قرن پنجم یه جدولی از اختلاف, مساح... اختلاف و مساحف امسار داریم بین شهرهای کوفه، مکه، مدینه، بصره و شام مصحفهای اولیه طبق گزارش گذشتگان ما در حدود چهل مورد تفاوت در کلمات داشته این مسئله غیر از اختلاف قرائات هست که یه پدیده ی متاخره و ما این رو به شکل ثبت و ضبط شده در متون کهن خودمون داریم حالا وقتی به مصحف های قدیمی امروزی و قابل دسترسی مراجعه میکنین میبینیم که هر کدوم از اینها واقعا به یکی از این شیوه ها نزدیک ترن یا به شکل سیستم کوفی یا به شکل و مصاحف مثلا بصری و یا شامی و غیره مثلا تا اونجایی که من تحقیق کردم تا اونجایی که من جستجو کردم مصحف های حجازی کهن عموما اختلاف مصحفشون به منطقه شام میخوره یعنی مطابق با اون سیستمی است که از شام برای ما گزارش شده و در برخی موارد به مدینه بسیار نزدیکه مثلا نسخه شماره هجده که من متکفل کار تصحیح و مقدم نویسی و تحقیقش هستم برای فا... چاپ فاکسی میله یه نسخه مدنیه یعنی از حیث اختلاف مصائب لمصار ویژگی‌هاش اون مواضع خاصش خیلی خیلی بیشتر بیشتر از 90 درصد مدینه نزدیکه دو مورد تفاوت داره که اونم باز از مکه بیرون نیست به مکه نزدیکه لذا ما این ویژگی‌ها رو در نسخه های کوهن میتونیم به همین صورت بیابیم مسئله اختراف قرائات هم خیلی نکته مهمیه در نسخه های قرآنی که از قرن سوم، یعنی از اوایل قرن چهارم دیگه بعد از تسبیع قرائات به دست ابن مجاهد نسخه های قرآنی که نوشته میشن اینا عموماً یک التقاطی از قرائات مختلف رو در کاتب در خود اون نسخه می نویسه و می آورد یه مثال فقط برای شما بزنم در آسان قدس رزوی نسخه هایی که تاریخ دارن مورخ هستن در میانه قرن چهارم تا حرود ششم فقط تو این فاصله هفتم هشتم این اتفاق این حرفی که من الان میزنم قابل تطبیقه ولی من فقط تا ششم رو تحقیق کردم حدودا نزدیک به 800 تا 900 تا نسخه یا جزوه قرآنی به صورت جز جز وجود داره که تاریخ های اونها متعلق است به دقیقا همین فاصله یعنی قبل از سال 300 نیست و بعد از سال 600 هم نیست اما هیچ کدوم این نسخه ها تا اونجایی که من دیدم حتی یک دونه از اونها به قرائت آسم نیست نه حفظ از آسم و نه عبوبکر از آسم این نشان میده که قرائت و نویسندگان این نسخه ها و یا واقفان این نسخه ها همگی یا شیعن صد درصد مشخص است که شیعان یا سنی هستند صد درصد مشخص است که سنی هستند محل کتابت اونها هم تقریبا 90 درصد در خود منطقه ایران یا ری هست یا نیشابور هست یا تبرستان هست یا خراسان به معنای عام و شامل موبره و نهر اینها این نشان میده که ما قرائات در قرن چهارم تا ششم تصوری که ازش وجودشه یا رواجی که از او وجود داشته و رواجی که از او داشتیم با اون چی که امروزه و بعد از تشکیل و سیطره دولت عثمانی در منطقه مشرق اسلامی داریم خیلی خیلی متفاوته بخش زیادی از تاریخ قرائات از تو خود این نسخه ها در میاد من نمونه های از این رو اینجا میذارم اول بریم سراغ اون نسخه ای که گفتم قدیمی ترین نسخه است که به خط نسخ کوفی نوشته شده مشا... ما هم بکنیم که چیخ... نکته خیلی مهمی رو فرمودن فرما دادن دوستمون آقای دکتر جاویدان قرائت هایی که در نسخه های قرون چهارم تا 6م به کار میره تا اونجا که من دیدم هیچ وقت یک قرائت خاص نیست در مشرق در مغرب قرائت خاصه قرائت نافعه در مغرب قرائت نافعه یا قالون از نافه یا ورش از نافه. گاهی هم ابو امر. ابو عمرو هم به شکل کامل و 100 درصد مغرب یعنی از مصر به اون طرف لیبی الجزایر یعنی افریقیه به معنای آمش تا اندولوس و موریتانی و اینها که اونجای که ای بوده. بخاطر این بوده و خاطر اینکه مالک هم فقهشون هم فقه مالکی هست یه دلیلش رواج قرائت نافع هست که رافت مدنی بوده و این اونجا قرارات ولی در مشرق ما قرآن های قرن چارم تا ششممون هممون یک تلفیقی از قرآت هستن یعنی در نسخه مثلا همین چستربیتی که به خط ابن بواب در 391 مشهور هست و نوشته شده شما یه قرآت نبیبینید قرائت ابو امر میبینید قرائت نافع میبینید قرآت کسایی میبینید و قرآت یعقوب از قرآت عشره یعقوب با اینکه جزء جزو قرآه اشره از بعضی قرآه سبعه تأثیرش در کتابت قرآن بیشتره حضورش در, در کتابت قرآن ها بیشتر هست مثلا از قرائت حمزه ما بیشتر میبینیم یعقوب رو این نسخه یک نسخه بسیار پرقلطی بوده در سی جز یک کاتب بسیار معمولی در حدود سال 267 هجری احتمالا این کتابت کرده و خیلی طبیعی نسخه ها پر غلط در می اومدن یا کم در می اومدن نسخه پادشاهی و ملکی نبوده اما معمولا یه نفر می اومده و اون رو تصحیح می کرده نام مصحح رو ما در اختیار داریم یه نفر اومده 3 این نسخه رو از ابتدا تا انتها بررسی کرده غلطهاش رو رفت کرده و نقطه گذاری و اعجام هم کرده و در پایان به فارسی در پای تمام اون نسخه ها تاریخ زده و اسم خودش رو نوشته مثلا در این تکه که در اسرائیل، الان در کتابخانه ملی اسرائیل قرار داده نوشته این جزء سیپاره جمله درست بکرد به اجم و نقد و تشدید احمد خیقانی نصره الله فدین به منهی نهی سنت اسنی و تسئین و اسنعیمه این تنها جاییه که من دیدم به کلمه دیویس یه نفر گفته اسنعیمه یه عربی خیلی درب و داغون داره در اینجا نوشته این جامعه را درست بکرد احمد ابن عبالقاسم الخیقانی یعنی نشون میده که کاتب ابدا ایرانی نیست خیقان، البته خیقان اشتباهه، من اشتباه تلفظ کردم این نام درستش خیقانیه یه منطقهی، فرسیمیسی کتاب کتابخانه اسرائیل گفته این در رزن همدان بوده من یه وقتی حد می‌زدم ممکنه این خیگان نزدیک طالقان باشه ولی الان تقریبا به قدر رسیدم که این خیگان یا خایگان یکی از مناطق مشهد خود امروزی ماست و کتابت قرآن و کلا کتابت این جور نسخه ها در اونجا بیشتر رواج داشته شواهد دادم که یک مقاله الان در مجله آینه میراث فکر کنم تا یک ماه دیگه راجب این موضوع من نوشتم و تحلیل این اونجا خواهد اومد ولی به هر حال شما در کتابت می‌بینید کلمه درست زیر دال و را و سین سه تا نقطه گذاشته شده نوع کتابت فارسی که کلمات حروف ر دال و زال رو نقطه های بالا و پایین میذارن و از هم جدا میکنن تقریبا در تمام نسخه های که تو قرن چهارم تا 6 در آسان قسنزی نزدیک 800 900 تا وجود داره اوناییشون که تو منطقه ایران پیشی گرفته تقریبا تمام اونها این ویژگی رو دارن یعنی زیر را و دال نقطه است زیر سین سه تا نقطه است برای تفاوت گذاشتن با شین خب از این مورد میگزاریم این خیلی داده ای مهمیه چون ما تا الان فکر میکردیم قدیمی ترین دستنویچی مال میانه قرن پنجمه ولی الان هرودن به 292 میرسیم که آخرهای قرن سومه یه نمونه دیگه که در تاریخ سنت خمس عشر و اربع مئه کتابت شده ولی جالب از که نویسنده که یک کسیست به نام حسن ابن سلح یه قرآنی در شیش جز در ساریخ 415 نوشته در آستان قدس وجود داره بعد از نوشتن یوم یا سلسا اصاب منزل حجه،, منزل حجه به تاریخ یزگردی هم اشاره کرده روز بهمن من مای اسفندارمز روز بهمن در تقویم یزگردی یعنی روز دوم هر ماه تقویم یزگردی یا تقویم ساسانی و زرتشتی هر روز ماه یه اسم داره روز اول یه اسم روز دوم یه اسم نمیگن روز اول دوم سوم به روز دوم میگن روز بهمن و ماه هم که ماه اسفنده یعنی روز بهمن من ماه اصفندارمز این یه ویژگی, تار... ویژگی تاریخ اجتماعی ما رو نشون میده که یه کاتبی در پای قرآنش در اول قرن پنجم تقویم زرتشتی می در احتمالا خراسان این اون جدولی بود که از اختلاف مصاحف امسار گفتم که در همه نسخه ها یکی از این ویج... های قدیم البته یکی از این ویجی‌ها رو می‌شه دید من جدال از کتاب آقای آلتقولاش گرفتم که یک نسخه توپکاپی رو چاپ کرده و اینو مقایسه کرده با پنج تا شهر دیگه مدینه مکه کوفه و بصره و شام مثلا در بغره 332 مصحف مدینه و اوسا بها به و اوسا رب... و اوسا بها به ابراهیم و بنیه بوده در نسخه مدینه و, و اوسا نوشته شده در نسخه مکه و وسا کوفه و بسرن و وسا و دوباره شام و اوسا نسخه استانبول مطابق با مدینه و شام هست مثلا یا در این صفحه اینجا سوره مؤمنون آیات 87 و 89 به جای الله در مصحف بسره الله نوشته شده من اینجا روی این دو تا آیه تمرکز میکنم برای اینکه این نکته میخوام در مورد یک دسته از مصحف ها بگم که حاصل یه پجویشش پنی سال است تقریبا تمامی نسخه های قرآنی که به اعمه ما نسبت داده شده چه در پای اونها اضافه شده باشه نام یک امام و چه به صورت شفاهی شهرتی داشته باشند در تمامی اونها تا جایی که من دیدم وقتی به این آیه میرسیم مصحف مطابق بصره نوشته شده یعنی سیقولون الله نوشته شده مصحف امروزی ما کوفی در این قسمت مطابق با سیقولون لله هست این آیه و این البته قرائت ابو امر هم هست یعنی جزء قرائت ابو عمرو است ولی جالب است که تا الان من نسخه ای منسوب به ائمه که این قرآن ها معمولا از قرن دوم به بعد هستند پیدا نکردم که سیقولون نوشته شده الا فقط یک نسخه که اون هم یه نسخه هجازی هست نسخه هجازی نسخه شماره هجده آستان قدس که در این آیه به خاطر اینکه خیلی قدیمی تر است من گفتم نسخه هجازی معمولا متقرب قرن اول است. هنوز این ویژگاه نایمده اون نسخه منصوب شده البته فقط اون قصه خیلی مفصلی داره که این انتصاب رو باید رد بکنیم چون دلاله دیگه داریم برردش که موضوع بحثمون نیست. Uh, چند تا ویژگی دیگر در تاریخ قرآن بشنب... ب... نمونه گذاشتم اینجا که مثلا میبینیم uh, سوره فتح در یک قرآن دو تا سوره فتح میتونه وجود داشته باشه و این اصلا برای قدیمی ها عجیب نیست هم به سوره ازاجا نصر الله میگن سوره فتح سوره الفتح سلاس آیات و هم به سوره انا فتحنا لك فتحا مبینا میگن سوره فتح به هر دو فتح گفته میشه و در یک نسخه من عادتش آوردم به همین شک سوره سجده این خیلی از نسخه ها این ویژگی رو دارن شاید شما هم دیده باشین که هم سوره سی و, دوم و هم سوره و یکم هر دو رو میگن سوره سجده چیزی که ما امروز اصلا برامون خیلی عجیبه در یک قرآن دو تا سوره همنام داشته باشین ولی برای مثلا کتابت فردی مثل اب در سال 619 در موزه ملی ایران به سوره فصلیت سجده گفته شده باشه این سوره فصلیته سوره فصلیت با هامیم شروع میشه بعضی یا البته تو نسخه هاشون کم کم اینو میکنن نامش رو میکنن هام اینو این رو میکنن الفلام میمسجده ولی خب این یه خورده متأخرتره. تره یا مثلا در همون نسخه که شما تاریخشو پرسیدین نسخه شماره پنجاب و نه سوره خیلی شاید به سوره علق بگن سوره قلم و یه سوره قلم هم داشته باشن یعنی تا سوره قلم داشته باشیم یکی سوره نون و القلم یکی هم سوره اقرب اسم رب بکر لذی خلق چون تو آیه پنجمش چون تو آیه چهارمی عل، اللق مبل قلم آمده است به این سوه قلم گفته بشه. اینا ویژگی هایی که ما با رفتن به درون نسخه های کواهن تاریخ شد میبییم. یا نظر اجتماعی کسی اومده از این نسخه معروف تفسیر حدادی رو که در نسخه توپکپی که فکسی میل هم شده عثمان ابنل حسین رو تبدیل کرده به علی ابنل حسین که خیلی بکنه اون در سال چهار این کتابت شده. یا اون نمونه ای که براتون از ستاره پر داوود گفتم اتفاقا این در همون نسخه توبقاپی هست از تفسیر حدادی که خیلی راحت کاتب یا مذهب از ستاره پر برای این کار استفاده میکنه نه نه ابدا نبوده در, در میان جامعه اسلامی چون ستاره های پر هشت پر، پنج پر، دوازده پر و ده پر و حتی ستاره نامتقارن هفت پر به شکل‌های مختلف در دوره‌های مختلف تو تزهیب و تو معماری های بناها استفاده می شده شیش پر هم یکیش بوده خیلی می زیبایی خاصی بده و یکی دوتا نیست فراوانه خیلی. فکر می‌کنم تا قرن هشتم هنوز کتابت هشتم یا نهم. مطمئن نیستم نیست ولی هشتم خیلی نمونه داریم که کتابت میشه رسم شده. خب از این میگذارم این یه نمونه شاهنامه است که سرفصلاش و یه کسی با خط کوفی نوشته و جالب شاهنامه که یه کتاب کام بدن فارسیه شاهنامه فلورانس معروف که مدت ها این رو به عنوان قرآن کاتالوگ کرده بودند توی کتابخونه قیافه این رو به شکل قرآن میدیدن به خاطر اینکه سربخش ها رو این رو به صورت به خط کوفی نوشته. چند تا نسخه منصوب به عمه داریم که کتبه کتا، علی ابن ابی طالب در بخش‌های مختلفش اضافه شده نعم مولا و نعم نسیر میبینید این نسیر اینجا بوده خیلی کوچیک اینجا نوشه شده و بخشش پاک شده و منصوب شده به امام همین شکل در نسخه دیگهی مثل این در اینجا باز با یه قلم متفاوت کتبه علی ابن ابی طالب اضافه شده در اینجا یه نسخه روی کاغذ منصوب به امام حسن علیه سلام شده که در موزه ملی جالب است این یه نسخه مغربی هست به خط مغربی نوشته شده ولی در دربار شاه سلیمان اینجا نوشته شده به تاریخ شهر زیهجه سنه 1077 از دولت خانه مبارکه بیرون آوردند و در کتابخانه سرکار خاصه جمع شد خط حضرت رضا اینجا خط خط امام خط امام رضا حالا وقتی داخل میریم کسی که کتابدار سلطنتی بوده و این شهادت رو اینجا نوشته در جاهای دیگه هم این رو نوشته مثلا اینجا نوشته خط امام رضا و اینم نوشته پوست آهو خط امام رضا و اینجا هم نوشته باز در این قسمت و جالبه که این خط به قرائت نافه و به خط کاملا اندلوسی قرن شاید پنجم پنجم یا چهارم نمیخوره پنجم نوشته شده و کاتب چون نمیتونه این رو با نسخه های خط خودش همسان بدانه و ببینه قدیمی ها رو به یک امامی به یک فردی نسبت میداده یا این نمونه که خط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هدیه صد روپیه همونجا قیمت رو هم فی المجلس تعیین کرده و روی اون برگه نوشته که این الان در کتابخانه بادلیان نگهداری میشه. من از این نمونه ها میگذرم اینم خب این نمونه رو ببینیم این یه نمونه ای است از کتابخانه عتبه حسینیه که نسخه سمت راست اه اه اه همون نسخه ای است که ناصر و دیشا در سفر خودش زیارت کرده در حرم حسینی و یه تکه ای از او الان در کتابخانه بادلیان در آکسفورد قبلی هم با تکه از بادلیان در آکسفورد هست که تکه اصلیش در یعنی بخشیش در کتابخانه ملک است و کسی که عامامله این کار هست و نسخ های بسیار زیادی رو از ایران به بادلیان برده فردیس به نام سرگور اوزلی که الان یه مجموعه سرگور اوذلی در بادلیان به نام خودش گذاشته و همون کسی است که قرارداد گلستان رو بین ایران و روسیه از طرف ایران کتابت کرده. خب حالا می به بخش سوم صحبت من که ما چه کار میتونیم بکنیم که نسخه شناسی ما ارتقا پیدا بکنه و فهرست نویسی ما از این چیزی که هست بروزتر بشه و پیشرفته تر بشه من یه نمونه در ابتدا آوردم که در کتاب در فهرست کتابخانه خانه الله مرعشی یه قرآنی معرفی شده این اطلاعاتی که الان شما میبینین در اینجا اطلاعاتی نیست که تقریبا به طور قول علمان لا یوسمن و لا یغنی منجو صرفا یه توصیف فیزیکی است که بتونیم اون رو از تو قفسه بشناسیم تعداد سطرش رو در بیاریم حجم و اندازه و قطعش رو بشناسیم و تعداد برگهاش رو بشماریم و سانتیمتر رو در همین حد نمونه های شبیه به این در فهرس نویسی های, های متعدد چه شخصی و چه های عمومی و معروف کم نیستند که در ایران کتابت شدند و اینها مطابقه با استانداردی که امروز در نسخه نویسی قرآن تو دنیا انجام میشه نیست برای این کار من یک فهرستی از مهمترین چیزهایی که به شکل مقدماتی میتونه برای ارتقاء فهرست نویسی ما در آینده کمک بکنه اینجا به شکل پیشنهاد ارائه میکنم که شاید یک شبه این کار انجام نشه شاید تا الان خیلی ها به این کار اقدام کرده باشن در حد خیلی مختصر و جزئی ولی لازم است که بس پیدا بکنه. نخستین مطلب این است که وقتی فرستنویس میخواد یه نسخه رو معرفی بکنه، اطلاعات دقیقی در مورد محتوای خود متن بده. خیلی وقتا فرستنویس میگه این قرآن از سوره واقع شروع می‌شود و به سوره مثلا انعام ختم میشه. متوجه نبوده که این قرآن برگه هاش جابجا شده یا سوره هاش جابجا شده. حتی همین توضیح رو اونجا نیاورده است که چه هایی از این قرآن افتاده، چه قسمت‌هاییش جابجا شده. الان نسخه نویسایی که در دنیا مثلا کتابخانه های مهمی مثل کتابخانه ملی فرانسه و فرم مثلاً آقای دروش 1983 کاتالوگ کرده وقتی واردی یه نسخه میشن اون نسخه ممکنه که اجزای مختلف قرآن های مختلف حتی در درونش باشه هر بخشی رو از بخش دیگه جدا میکنن شماره نسخه رو عوض نمیکنن یه نسخه هست ولی به صورت الف به جیم دال بخش های مختلفش رو جدا میکنن میگن این متعلق است به فلان تکی که در فلان کتابخانه یا در همین کتابخانه قرار داره این دیکی که اینجا است کدوم سوره ها رو مشتمل است کدام قسمتاش وسطش افتاده و این اولین کاری است که فهرست ما میتونه در ایران امروز نسبت به موضوع انجام بده. دومین نکته اطلاعات خیلی مهمی در خصوص روزگار زندگی کاتب، مذهب واقف یا مالک اون نسخه اگر نامش آمده یا آمره به کتابت اون کسی که امره به کتابت کرده و درخواست کرده اینا خیلی ویژه اگر ما بگردیم خیلی ویژگی های مهمی با دوران کتابت اون نسخه رو و ارتباط اون نسخه با تحولات اجتماعی روزگار خودش نشون میده همچنان که امروز فرسیمیس و ما وقتی یه نسخه ای از تبیان یا نسخه ای از کافی رو میابه و او رو مقایسه میکنه با جاهای دیگه و یا اسم کاتب براش خیلی مهمه که چه کاتبی اجازه روایت رو بعد از کتابت روی اون نسخه نقل کرده یا کدوم عالم این نسخه در اختیارش بوده و از دونه دونه این اطلاعات برای ما گیری های علمی انجام میده در منطور نسخه های قرآنی به فراوانی خیلی بیشتری میشود این کار رو انجام داد اینکه ترجمه فارسی که در نسخه آمده است چقدر اصیل چقدر رونویسی از نسخه‌های دیگه است و با سایر نمونه‌ها مقایسه بکنیم. حرف‌هایی بزنین در مورد مکان کتابت اون نسخه های کوفی در ایران کتابت شده این نسخه ب... به چه دلیل در شام کتابت شده در عراق در مصر در اندولوس. مثلا الان نسخه های کوفی قدیمی که یا حجازی و کوفی قدیم که در فستاد و در مسجد جامع عمرو در مصر قدیم کتابت شده اینا یه ویژگی های خیلی خاصی داره و در دوره های مختلف از اونجا بیرون اومدن که بیشترینشون بعد از حمله ناپلون بوده و بخش زیادش به اروپا رفته تمرکز رو قرآن نویسی فستاد امروزه بر اساس نشانه هایی که ما از نسخه های فستاد میشناسیم انجام میشه لذا یافتن یا حدث اولیهی در مورد مکان کتابت خیلی کمک میکنه به اطلاعات دیگهی که در مورد مسائل نسخه از جمله قرائات و اینها و یا کاتب ما نیاز داریم اعتراض در مورد سبک یا شیوه کتاب‌آرایی و تذهیب نسخه اینا هر کدومشون چون مشخصا مرجوعی در مورد قرائات موجود در نسخه این تقریبا کاری که هیچ نسخه نویسنده تا حالا نکرده حتی غربی‌ها هم این کارو نکردن خیلی مهمه که ما بدانیم در درون این نسخه چه قرائاتی یا چه قرائت‌های وجود دارن تا حدود قرن نهم تا اندازه دهم در ایران و عثمانی ما توی این مناطق تو کل جهان اسلام تا قبل از آمدن صفویان در ایران و عثمانی ها در ترکیه و منطقه عثمانی ما انواع قرائات داشتیم حالا یا ترکیبی از قرائات مختلف یا قرائت بر اساس یک قاری مثلا در دوره مملوک ها در مصر قرآن 90 درصد به قرائت ابو امر کتابت شده الان نسخه های مملوکی که در دنیا هست مثلا بخش زیادش تو چستربیتی یا در دارالکتب کتب المصریت توی قاهره قرار داره اینا قرائتشون ابو امره اما در آمدن با آمدن عثمانی ها یه اتفاقی که دقیقا نمیدونیم اون اتفاق چیه قلبه کاتبان عثمانی یا آلمان عثمانی که علاقه خیلی خاصی به آسم داشتند آسمی که در روزگار مجاهد ابن مجاهد در اول قرن چهارم در قعر قعر کوفه بوده یعنی قرائتش بعد از کسایی و حمزه بوده میاد رو و میشه ملاک قرائت جهان اسلام و با کمک یعنی با سلطه عثمانی ها و رقابتی که از این طرف با ایرانی ها داشتن یعنی صفویان داشتن حتی قرائتشون به این ورم تحمیل میشه و یه دفعه ما قرائت آسم رو همه جا میبینیم اما پیش از اون هر نسخه ای که میبینیم فارس نویس یا نسخه شناس ما باید کمک بکنه به ما بگه که در این نسخه کدام قرائت یا کدوم دسته از قرائت ها حاکم و ساری هستند و جاری هستند در در مورد یمن نسخه های قرانی قدیم که من دیدم که قرائت های قدیمی هستند یا مثلا نسخه های حجازی هستند نسخ های جدید من خیلی کم توشون دیدم ولی اونها اونایی که من دیدم تا اندازی که من متوجه شدم خیلی تحت تاثیر مغرب هستند یعنی تو اونها قرائت نافع خیلی بیشتره تو اندازه‌ای که من آوردم من تعداد جدید در یمن شاید بیشتر از مثلا 30 چلتون نریده باشم اون تعدادی که من دیدم و جدید بودن یعنی مال مثلا سیصد سال اخیر بودن تو این فاصله متأثر است. این کار مثلاً در از کار فهرس یه کتاب تا 6 تا 7 تا نقطه قرآنی بره و اون مثلا برای یه قرارداد یه خیلی سرسری قرارداد نشه این نیاز به یه بله میشه میشه این کار کار تیمیه نه این کار تیمیه یه کار مستقل مهم... نه نمی‌شه واقعاً دست کم یه اطلاع اولیه میتونه بده دست کم یه اطلاع اولیه میتونه بده دست کم هم میتونه, هم میتونه همون اول سوره بقره رو ببینه نمیدونم یو او نه و یخت اونش و یک زبون و یک زبون و نمیدونم اینا رو ببینه بزنین و بزنین یعنی و ما هو علال غیبه بزنین یا بزنین توی نسخه انبوهی از تفاوت ها بین این دو نسخه از همین اینجا یه اطلاع اولیه در مورد اینکه این قرائتش آسم نیست به ما بده این خیلی مهمه ولی ما همین مقدار رو هم نمی‌بینیم حالا این, حالا این من به اینوار مقدمات به اینواری پیشنهاد گفتم اینکه ایدهال ایدئال چجوری بتونه انجام بشه؟ این درماظر ما خودتون اگه هم خیلی انتخاب انتخاب این انتخاب اون و که درست کرده واقعا نمیتونه به این نتیجه بله بله. اول میشه گفت درصد اول تقریبا نه. ندارن و همه منصوب هم. نداره و این حتی وحف دروی در وحفناه هم نمیتونیم اعتمادی بکنیم چون وحفناه اعتماد داره نفته در دمرت کتاب ها مثلا مثل وحف شده چشونی میخونم به خاطر این برنامه هی که در حتی در برمان چهار شده بگیم اون در تمام این توضیحات در مورد تمام قرآن ها صادق نیست متلمن در مورد سقرن اول ما چیزی در مورد کاتبش نمیتونیم بگیم من همیشه یکی از حرفام اینه که هایی رو که به ائمه نسبت میدن و در پایانش نوشته شده او هو علی ابن ابی طالب یا نوشته شده كتبه هو و ذهبه هو علی ابن ابی طالب وقتی ما از چنین چیزی رو باور میکنیم دقیقا مثل این میموند که مثلا از رضا شاه یا از الکساندر گراهام شماره موبایل داشته باشیم که بخوایم ممکنه رضا شاه یا الکساندر گراهام تلفن معمولی داشته باشه به جای زنگ زده باشه ولی اینکه از او تلگرام و شماره موبایل و فیسبوک طلب بکنیم عین میموند که از امام اصلا رایج نبوده از قرن اول کسی در پایان قرآن اسم خودش رو بنویسه در قرن دوم و اینا چیزای بعدی است که به قول غربی ها آناکرونیسم داره ناهمزمانی تاریخی داره به اون قبلی ها نسبت داده شده دو مورد آخر اطلاع در مورد پاره هایی که مهمترین ویژگی است که نسخه شناس کمتر بهش داشن پاره های دیگه این نسخه کجاست هیچ وقت نسخه ها کامل یعنی معمولا خیلی نسخه ها کامل نیستن به خصوص نسخه های قدیمی ولی برای یه محقق وقتی یه نسخه رو بررسی میکنه خیلی مهمه که بایدانه تکه دیگه این نسخه الان کجاست وقتی یه نسخه 500 صفحه بوده و ما الان 50 برگش رو بیشتر نداریم در اختیار نداریم و با همون 50 برگه میخوایم داوری بکنیم این خیلی مهمه که 450 برگه دیگرش یا 100 برگه دیگرش یا دستی کم یه برگه دیگه از اون نسخه رو یه جای دیگه پیدا بکنیم اطلاع در مورد پاره های دیگه یا حتی نمونه های مشابهی که از این خط وجود داره چطور وقتی یه نسخه از یه تفسیریه کتاب حدیثی رو میبینیم و میگیم این کاتب عیناً یه نسخه دیگه رو در فلان جا کتابت کرده این اطلاع رو میدیم فرسیمیس قرآنی باید تا اندازه‌ای به ما کمک بکنه که پاره‌های دیگه اون نسخه قرآنی رو هم بتونیم بیابیم و اطلاع در مورد میزان یا شکل تکمیل نسخه یا اضافه هایی که به نسخه شده مثلا قرائت نسخه عوض شده در بسیاری از نسخه ها که قرائت مطابق آسم شده تغییر کرده یا به نسخه چیزهای اضافه شده اعراب های خاصی اضافه شده در نسخه های کوفی قدیم هست که یک نسخه با علامت های نقطه های قرمز رنگ اعراب گذاری شده و بعدا با سه رنگ دیگه قرائت های دیگه در اون نسخه مشخص شده با رنگ سبز با رنگ آبی و با رنگ زرد سه قرائت متفاوت اطلاعات در مورد این اختلاف قرائات یا تغییر قرائت نسخه باید داده بشه من از اینجا شروع میکنم دو نسخه یکی در موزه ملی ایران یکی در نسخه در کتابخانه گلپایگانی ظاهر اینها هیچ ای چیزی رو نشون نمیده هر دو یکی میگه تا قرن سوم اون چیزی در مورد زمانش نمیگه این گلپایگانی نسخه گلپایگانی گفته میشه که بذارید من کرصر رو شما میبینید من. من رنگش رو لیزر بکنم نسخه گلپایگانی نوشته سوره صف و جمعه و اندکی قبل از آن اندکی قبل از آن یعنی سوره زمر بوده در واقع اندکی قبل از آن و ولی در واقع این دو تا نسخه یکی هستن. این نسخه موزه ملی ایرانه در 20 سطر و این نسخه سمت راست کتابخانه آیت الله گلپایگانیز تکه تکی از همون و سمت چپ برگهایی از اون نسخه که در حراج لندن فروش رفته. دو تصویر بعدی هم باز متعلق از به همون نسخه که در حراج لندن فروش رفته. البته من متصفانه با عجل اومدم تا این دو تا برگ. تاریخاشو ندارم. حدود 300 ساله که سه تا حراج مهم ساتبیز، کریستیز و بونهامز در لندن تمامی اشیاء مهم ارزشمند تاریخی از هر فرهنگ و هر نقطه جغرافیایی دهان رو مالکانی میارن و در اونجا به حراج میذارن و میفروشن در حدود 50 سال اخیرش این سه تا حراج یکی از کارهایی که اضافه کردن نسخه های قرآنی و اشیاء فرهنگ اسلامی مثل کوزه و اشیاء اینچنینی ما اگر بتوانیم اطلاعات در مورد اونچه که در این حراج ها فروش رفته و تصاویر و اطلاعات اون نسخه رو داشته باشیم یعنی فرسه میز ما داشته باشه کم که در این مورد این نسخه من این کار کردم وقتی یه نسخه ای در کتاب خانه آیت لایگوور معرفی میشه به او بگیم یه تکش در موزه ملیز و چهار تکش در چهار تاریخ مختلف در حراج ها فروش رفته اطلاعات تکمیلی اون نسخه رو به نوشتن داریم من فقط چهار تا نسخه را به سرعت میخوام پایان صحبتم همینه میخوام چند تا نسخه رو از این حیست نشون بدم که تکه های دیگرش کجاست مثلا این نسخه در مرعشی نوشته شده جزء هشتم و هفته هم میباشد خط کوفی کاتب ابن بواب علی ابن هلال 392 قمری در روی برگ اول تملک عبی سعید محمد ابن حسین ابن علی دیده میشود در این نسخه کوفی دانشگاه تهران هم دقیقا همون جزء 22ش وجود داره با این تفاوت که این خط ابن بواب یا امضای ابن بواب جعل نشده این از جعل مسئول مونده ولی این جعل رو داره هر دو تاریخ ندارن بله این تا... وقتی کسی جعل کرده ابن بوابو تاریخ هم زده ولی این تاریخ نداره ولی همین آدم که یک وزیر است این یه وزیر آله بویه است حدودا 439 فوت کرده این فرد ابو سد. یه تکه دیگه از همین نسخه در آستان قدس هست باز اون کسی که این رو روش رو نوشته الان می‌بینیم تصاویرشو و اوف هر زده در استان قصد که این قرن ششم هجریه در حالی که این ستا اگر می‌دونستان که بخشای دیگه از نسخهشون در کتابخانه بغلدشتی شونه یا تکه های دیگه از اون نسخه در دنیا فروش رفته اطلاعادت بررسیمیشون کامل‌تر میشد این نسخه از کتابخانه مرعشی است در روی صفحه اول نوشته شده احتمالاً مالک یا امار به کتابت یا به نظر من شاید حتی کاتب اللهم مغفر لله قبل که مزنب راجی ایلرحمتالله عبیسات محمد بن الخسین بن علی و لوالدایه و لاؤلاده و لجمیع المؤمنات مؤمنین و المؤمنات و لمن قائل آمین یا رب العالمین صفحه اول نسخه مرعشی صفحه آخر با یک افزوده کاملا جالی کتاب های زل جامع علي بن نهلال هلال یا به مدينت السلام سنت و تسئین و ثلاثه خب همین نسخه تکی دیگه در کتابخانه دانشگاه تهران با همون ملکیت وجود داره و تکه و تکی های این صفحه اول اون نسخه دانشگاه تهران با همون خط به تعبیر دوست دانشمندمون آقای حسینی آقای موسوی بروجردی با این کوفی بی سلیقه یه بار یادداشتی ایشون نمیشن که ابن وبواب چقد بی سلیقه بود باشه که چنین کوفی ولی به هر حال این یک کوفیای پرطرفدار بوده ابن وبواب دستی کم اینو ننویشه ولی از این که در اینم دو تا تکه از همین نسخه که در حراج های لندن این اولی و این دومی فروش رفته این علامت هایی که اینجا میبینید این نوع تذیع تعشیر یعنی 10 تا 10 تا کردن عیناً در اون نسخهای دیگه هم وجود داره نمونه بعدی قرآنیه بسیار معروف 3382 شماره 3382 که اینو مقام رهبری، مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای این رو اهدا کردن به آسان قدر 20 سال پیش این هشت برگ نه سطر وجود داره در این سایز حاوی چند تا سوره است دو تا برگ از سوره لغمان، دو تا برگ سوره سبه، احزاب و سجد پاره پاره و تکه های مختلف است قرآن بی اندازه در دنیا معروف شده به خصوص در آسان قطع. ولی نه فهرس نمیز های آسان نه اونجا و نه کارشناسان اونجا هیچ کدوم خبر ندارن که تکیه های دیگه اون دست کم در تا و من تکیه های دیگه شد در جای دیگم در کاخ گلستان و جای دیگم پیدا کردم یه تکیه در کتابخانه ملی اسرائیل هست فعلا در فلسطین شماره 970 که این سوره ها رو شامل میشه 21 برگه تصاویرش بله الان رو آنلاین هست بله بله آنلاین خودشون گذاشتن که در برگه آخر این نسخه در صفحه آخر این نسخه یه مهر فارسی خورده و نوشته خروج آزاد است تاریخ 1317 شمسی زمانی است که تعدادی نسخه دوزی شده بود از کاخ گلستان و جاهای دیگه و اگر کسی در اون دوره میخواست نسخه‌ای رو از ایران خارج بکنه باید به وزارت معارف اون موقع می‌برد و مجوز می‌گرفت که این جُزوه نسخه های دوزی شده نیست و این مهر رو این نسخه خورده و الان تو کتابخونه ملی اسرائیل هست جالب اینه ببینید سوره سبع اینجا وجود داره تو کاخ گلستان در, برگ... در یک نسخه ای که منسوب به امام سجاد شده شماره ده چهل سوره سبع هست در اینجا هم سوره سبع هست اینجا سوره لغمان هست در اینجا هم لغمان هست حالا وقتی ما میریم برگه ها رو کنار هم میذاریم اون سوره لغمان ادامش توی این نسخه است و اون سوره سبع ادامش توی این نسخه است من کنار هم قرار دادم نسخه کاخ گلستان رو کنار آسان قط رضوی قرار دادم این بهترین تصویری بود که من داشتم فقا این فقا لو ربنا بنا بعد نوشته شده باععد بینه فرنایه از ف رنا ناش اینجا اومده و زلمون انفص و زلمون انفظ هم فجناهم احادیث. الان این تیکیکی یک برگه است در کاخکولستان وصف میشه به اون تکه که در و نوع خط نوع تزهیب، نوع علامت گذاری یا همه اینن مثل همه است. در این یکی که یکی روشندتر یک است، شماره چلو، ده چلوشی کاخکولستان کنار این گذاشتم. و اید اخذ نامن نبیین میثاق هم و من که و من نوحن و ابراهیم و موسا و ایسابن مریم تا اینجاش و منش در این نسخه اومده، از نوح به بعدش در اینجا اومده و این ارتباط رو به هم میرسونه. نسخه معروف دیگری که در دنیا خیلی و میان نسخه شناسان ایران هم خیلی معروف است نسخه مکتبه امیر کتابخانه کتاب امینی است در نجف که منصوب است به امام علی و این نسخه خیلی شهره, شهره است یه تکه از این نسخه تقریبا هفت برگشت در متحف المتحف العراقی در موزه عراق در بغداد الان قرار داره که مشتمل بر این سورا هستند ولی تککهای دیگش دو تککش در آسان قدس بر شماره های 40 و 16 یک تکش در بادلیان با این شماره و جاهای دیگه من چون خیلی وقت کم هست فقط اون تکه هایی که به هم مرتبط هستن آه اولا تصاویر رو ببینیم این دو تا تصویر بالا متعلق است به شماره 16 آستان قدس این دوتا شماره 40 آسان قدس هستن این شماره اینجا شماره نسخه مکتبه امینی هست در نجف این بغلیش نسخه مدحف اراقی هست در بغداد این در یکی از حراج های لندن فروش رفته این تکه فکر میکنم در بادلیان هست و این بالایی الان خاطرم نیست فکر کنم در کاخگلستانه الان از روی حافظه نمیگم باید برگردم به صفیقم ولی پیوستگی ها رو میخوایم ببینیم الان نسخه شماره چهله اسان قد متصل میشه به نسخه شماره 16 آسان قد قالو الطير نا و بمن مک. انتهای این صفحه به ابتدای این صفحه متصل شده و فیرس نمیزه کتابخانه آسان قد دست کم هم همین دو تار که خیلی هم به هم نزدیک بودن حالا نمیگم علامه امینی در نجف رو بشناسه همین نسخه های خودش متوجه نشده که این تکه از این به این تیکه از این متصل میشه و نوع خط کتابت تعداد سطر ها همه مثل هم هستند امتحانی بکنه و دوباره از همون دو تا نسخه و تقلب آخر سوره شعرات و تقلب کف ساجد دین یا ونونش اینجا قرار گرفته و به هم متصل میشه. چرا جدا میشه ساجد دینش نمی‌دیم. خب من دوستان گفتن من این این کتاباتو بهش میگیم کتابت پیوسته. این سنتی است که از قبل از اسلام در نسخه های سوریانی وجود داشته و کلمات در سوریانی بدون فاصله هایی که ما الان متعارف است بین ما و را آیت میکنیم نوشته می شدن فاصله بین حروف در کلمه و فاصله یک کلمه با کلمه بعدی یک اندازه است مثلا ولا تظر و واضر توم وزر اخرا همه این کلمات با یک فاصله پشتر هم نوشته می و اگر کسی نتونه کلمات تشخیص بده نمی تونه آیه رو بخونه مثلا لا تزرو وازرتون رو ممکنه بخونه لا رو با اون بخونه این شیوه وجوده به همین تو همین سیستم اگر یه کلمه ای در پایان سطر تمام می شده سطر تمام می شده و جا وجود نداشته اون رو میشکسن و به انتهای سطر بعد منتقل می کردن. آقای دروش معتقدن آقای دروش معتقدن که این اتفاق در نسخه های هجازی یعنی قرن اول در دو تا صفحه نمی یعنی مثل اینجا الان ببینید. اینجا یک کلمه تموم میشه نصفش میره صفحه بعد ایشون معتقدن که این تو نسخه های قرن اول فقط توی سطر اتفاق می نه تو دو صفحه ولی در نسخه های کوفی و قرن دوم سوم و بعد تو دو صفحه هم اتفاق می ولی من فکر میکنم یه جایی تو نسخه های حجازی هم این رو یافتم. عذر میخوام میگونم ببخشید کلامم رو فکر کنم. این ماهیت و مرجع خود خط کوفی بله بله به تناسب خط کوفی از این کوفی اون حالت درش وجود داشته از همین سبک تبعیت شده و ادامه پیدا کرده اون طور تو خطش خونده می‌شده میگم جدا جدا حساب شده دقیقه این سمت راست یک نسخه ای در موزه استان قز که خیلی او رو به شکل خاص آراستند و یک قابی هم براش درست کردن یک خط کوفی ایرانی بسیار نقاشی زیبایی است گویی یک بار هم بیشتر گویی این کاتب این سبک رو ننوشته کاتبی نبوده که از روش تقلید هم بشه حتی سمت راست هم همونه در واقع پشت برگ این از زمانی که آقای گلچین معانی نقضی که 56 سال پیش اون کتابشون رو در مورد راهنمای گنجینه قرآن نوشتن این قرآن به دنیا معرفی شده و تو آسان قدس این نسخه فهرست شده اما هیچ کسی در ایران متوجه نبوده که بخشایی از این نسخه الان در موزه تارق رجب یا مؤسسه هنر شیکاگو سمت راست و چپ وجود داره. دو دوتا تکش در حراج کریستیز و ساتبیز فروخته شده. و از همه مهمتر تقریبا نزدیک 200 برگش در گالری فریر در آمریکاست که گویا اگر اشتباه نکنم از موزه هنرهای ترک و اسلام در ترکیه به امانت گرفته شده. این تصویری که شما الان میبینین برگ، تعداد برگه ها رو نشون میده. این یه نمونه. یه نمونه دیگه که خیلی جالب باشه برای آقای موسوی بروجردی عزیز در جمع ما نسخه اطب... یک... یکی از قرآن‌های عتبه حسینی است من حدود دو سه هفته پیش متوجه شدم سمت چپ ای است که با ترجمه فارسی یک خط کوفی خاصی نوشته شده و سمت راست قطعه‌ای است از همون نسخه که در حراج ساتیبیز لندن در 2015 فروخته شده و یه تکی دیگه دوباره از همون در ساتیبیز 2016 فروخته شده و آخرین نسخه نسخه عتبه عباسی است که چند سال پیش این نسخه قدیمی چند برگ دیگه شام مجموعه مجله دکتر خرازیه همین آها م... ف... پس من حد میزنم ممکنه ممکنه از طریق حراج ساتیبیز یا کریستیز خریداری شده باشه آه. از قبل تو ایران خریداری کردم برایش فرستادم جابجا بودش یعنی متکاوت آها خیلی اطلاعات خوبی بود من بعد به این مجموعه این ارتباطاتی که دارم باش اضافه بکنم حتما ممنونم آقایه قم هم دیدم چند از این نسخه خب بعد از این جلسه من این امارا رو میگیرم که اضافه بکنم از شما شما که اینو در قم دیدین چرا به مجموعه خودتون اضافه نکردین شما در مجموعه عتبه حسینیه ذکر کردم. مثلا شما هست این ولی این در این مورد من که من اینو دو سه هفته پیدا کردم خیلی جدیده آه، نسخه عطبه عباسیه به خاطر یه نسخه است که منصوب به ابن بواب شده و مسحه و در واقع چاپ کننده این نسخه مقدمه نویس بر این نسخه این نسخه رو که به خط سلس نوشته شده به این صورت با مقدمه بسیار طولانی برابر شواهدی که ادعا کردن در نسخه منصوب کردن به ابن بواب که در سال حرودن 411 فوت کرده اما این سبک از کتابت قبل از اینکه هیچ شاهدی داشته باشیم این سبک از کتابت سبکیست که در قرن ششم حداقل و هفتم بسیار بسیار متداول و رایج بوده و تو قرن چهارم آخر قرن چهارم یا همون هفت سال اول قرن پنجم خیلی بعیده ما تا حالا چه این چیزی تونسته باشیم پیدا بکنیم اما نکته مهم اینه که نسخه ای که در عتبه عباسی چاپ شده از سوره فاتحه شروع میشه تا پایان جزء اول یعنی تا آیه 141 سوره بقره و ادامه اون و مصحف نپرسیده از هیچ کسی که 29 جزء دیگه کجاست یه جستجویی بکنیم ببینیم بقیه این نسخه که بسیار نسخه فاخر و سلطنتی هست پیدا بکنیم تکه های مختلف این نسخه رو الان با هم مرور می‌کنیم یه تکه از این تو مجموعه خلیلی هست وقتی یه جز شروع میشه چهار سطر نوشته میشه بسم الله رو دقت بکنین اینجا بسم الله و این بسم الله تو چهار سطر نوشته میشه ولی صفحات بعد از اون افتتاحیه تو پنج سطر هستن مثل این صفحه که تو پنج سطر نوشته میشه در همینجا تا تنورداغه من نشون بدم که این آخر سوره منافقونه فیقول رب لولا اخرتنی اخرتنه اخرتنه إلى أجل قريب و وقون من الصالحين در قرائت ما هست و اکون من این تنها و تنها و تنها قرائت ابو امر هست در نسخه تکی که از همین نسخه که منصوب شده به ابن بابا تکی دیگه از این نسخه در کتابخانه چستر بیتی این چهار کادر بله وقتی افتتاحی افتتاحیه چهار خط صفات بعد پنج خط ببینید ادامه چستر بیتی دوباره پنج خطه نسخه دو تا تیکش در حراج ساعت 20 و۸1 و 889 نو... و و فروخته شده. این صفحه اول افتطاییی است چون کاررو داشته چه صفحات میانی 500ری هستند. این نسخه توپ قپی که من از کتاب آقای, آقای... نه آقای... این کسی که مصاحف قدیمی رو چاپ کرده مارتین لکس آقای مارتین لینکس گرفتم این سفره از نسخه توپ کاپی است و صفحه داخلیش هم که 5صدریه اما جالب اینجاست که ما زمان کتابت این نسخه رو تقریبا دریافتیم در, در تکه ای که در مجموعه خلیلی هست یک, ب... یک جلد یعنی صفحه ما قبل آخر وجود داره که نوشته شده که در خ... این همین مد در سمت چپ بازنویسی شده این... اینو... این کارو خود سایت مجموعه خلیلی انجام داده و این صفحه رو گذاشته رو سایت خودش من از اصف... اصف... سایت مجموعه خلیلی این رو گرفتم آه. اینجا نو... اینجا تاریخ کتابت و نام اون آمر به کتابت ذکر شده و از همه اینکه که دقیقا سالش سنه سب و ستمعه در پایین آمده است این چیزی که در اسم این, این یکی از پادشاهان آل زنکی هست در شمال اراق در منطقه سنجار یک فرد بسیار مشخص و معروف دوره حکومتش معروف مشخصه از چه تاریخی در چه تاریخی, تاریخی کتابت کرده خب اگر ما این اطلاعات در مورد تکه های دیگه این نسخه داشتیم نسخه عطبه عباسیه رو به جای اینکه که توبوغ کرنا بکنیم و جایزه کتاب سال حوزه هم بهش بدیم در جای خودش می نشاندیم و یک نسخه بسیار با ارزش بسیار با ارزش این نسخه از حیث زیبایی و از حیث تاریخ قرارات نسخه بسیار مهمی در جای خودش می و تکیه های دیگه اون رو به هم وحص میکرد البته این پاره های دیگه هم داره که من به خاطر فرصت کوتاه هم اون رو حص و مارتین لینکس اصلا تاریخ داره سوارتانی نسخه این داشته بچه در نسخه مارتین لینکس توبقاپی س... تو رو شما میگین؟ بله نه من کامل متنشو خوندم متن انگلیسی شده این نسخه ای که اگر این تیکه مرتبط با عتبه منظورتون باشه اینه نه من تاریخ شد توی نسخه در کتابخانه خلیلی مجموعه خلیلی دیدم خیلی عذرا من یه مقطوری از تصاویرم رو هست کردم برای اینکه خیلی حوصله شما ممکنه سر بره و من خی... خسته نمیشم برای هم مستمعی ممکنه که بر هر حال بیشتر از این جا نده اصخایی میکنم و خیلی ممنونم هم از دوستان خودم در مجموعه کاتبان و کتابخانه بنیاد محقق تبا و هم از اساتید خودم سروران پجویشگران عزیزی که بندرم مفتخر کردم و خوشحال میشم اگر به من یاداوری انتقادی خودتون رو بفرماین که کار من رو تصحیح بکنین متشکرم